چرا منیدن یعنی اندیشیدن میناگری منیدن یا اندیشیدن در فرهنگ ایران زیبا کردن و آراستن گیتی و اجتماع هست منیدن به عبارت دیگر مینو کردن گیتی اون به پیکار با خرافه می میپندارد می پندارد که خودش خرافه ندارد و روشن هست و این نخستین خرافه اوست و با, این با و همین هر خرافه بنیاد گذارده می شود پیکار با خرافه برای نابود کردن و ریشه کردن خرافه به دین علت کرده می شود چون خراف ستیز نمیداند که چگونه و چرا خراف پیدایش می آباد. جهل از ندانستن شیبه پیدایش خرافه علت دشمنی و کینورزی و زندگی و جهاد با خرافه است جهاد با جهل است اساساً خرافه هنگامی پیدایش میابد که انسان پراموش میکند چگونه بینشش پیدایش یافت است همون بینشی را که که خرافه مینامد بیناش که پیدایش یافت است امروز خرافه شده است. چرا؟ این فراموش ساختن روند پیداش بینش های ما سبب می شود که همه بینش های ما در درازای زمان تبدیل به خرافه می شود هر بینشی هر بینشی که نداند و آگاهی از آن نداشته باشد که چگونه و چرا پیدایش شفت است خرافه است ولی کسی آن را خرافه نداند بلکه علم و نور و روشنی بداند چگونه و چرا یک چیزی برای ما روشن شده است همون چگونه و چرا اون چیز برای ما پیدایش دست می باشد حالا خود همین واجه خرافه بهترین گواه بر دشمنی و کین ورزی ما با خرافه در اثر جهل ماست چون خرافه که در از خرابه باشد و به معنای خونابه و شیرابه چیزهاست و به احسانس چیزها و مغز و جوهر جیز چیزها گفته می شده است و های دیگرش جد و مان و رنگ بوده است و انسان با جفت شدن و آمیختن با این شیرابه یا خرابه یا جد آباد می شده است و از آن روشنی و بینش می است و از آن شعله زبانه می است این فراموش شده است خراوه شده خرافه با جذب این خرافه یا جد در وجود انسان روشنی از تن انسان پیدایش می خداست. روشنی از تن انسان میزایده است چون تن به معنای ذهدان است و از سوی دیگر انسان مردم تخم است و با هنجش این آب این نطفه این خراوه روشنی یا بینش را میزایده یا از اون میرویده ببینید چون که ما پید روند پیدایشه حتی همین خرافه را نمیدانیم از بهترین چیز بدترین چیز رو سختیم با اون می جنگیم چون رابطه پیدایش آن را پراموش کردیم البته می شود از چنین بینشی انتقاد کرد و حق آن هست ولی چنین بینشی با خود نیست بسیار نکات لطیف و ژرف و مردمی می آورد نمی توان اون بخش ها را یکجا دور انداخت و تر درد کرد هیچ بینشی نیست که از همه سویش کامل باشد هر چراغی نیست در زیرش تاریک است اساسا بینش روند همیشه روشن شدن از تاریکی است این تاریکی روشنی نه چیز زده همان بلکه از حرکت از این کششی که ما در تاریکی به روشنی داریم همیشه روشنی پیدا می شود. اگر ما این تاریکی و این کشش را به اون دانایی روشنی یک شایی نمیارزد یعنی هیچگاه تاریکی را نمی شود از روشنی جدا ساخت از روشن بودن تا روشن شدن فرق کلی هست انسان هیچگاه روشن نیست بلکه وجودی روشن شونده یعنی همیشه در تاریکی و جستجو و آزمایش به روشنی تحول مییآبد این مفهوم روشنی مطلق و بیکران و اینها بر ضد موجودیت انسان است حالا در مقابل این بینش همین خرابه و آن در انسان یعنی ش... کسی شیرابه هستی را درک کند و از اون روشن بشود در مقابل این بینش بینش دیگری در زدیت با این بینش پیدایش شد زدیت با این بینش چی شد؟ سبب پیدایش بینش دیگری شد که بینش زدهش بود و درست از همین روان و پیدایش بینش تازه از اون بینش کهن سبب بهترین راه است برای شناختن همین بینش دوم بینش تازه در اثر زدیت با بینش پیشین مدعی شد که روشنی و بینش از انسان در انباد شدن با طبیعت و گیتی نمی روید و پیدایش نمی یابد. بلکه اصلی فراسوی او که روشنی بیکران است سرچشمه همه بینش هاست مانند خورشید است همه روشنی های انسان ها آریتی است و از این روشنی بیکران این علم مطلق این علم فراگیر جامع این همه آگاهی و همدانی پیدایش آورد و انسان باید تابع این روشنی باشد چون امید آن که از خودش با انباج شدن با حواسش با گیتی روشن و بینا شود باید چشم پوشد چون این حرف حرف جاهلی این حرف جاهلیات این حرف خرافه درست اون چیزی که خرافه میگفت که انسان از تماس و مستقیم با طبیعت و پدیگده ها و جو درک و جوهر آنها ببینش میرسد شد خرافه و این آریت کردن روشنی شد علم و نور درست خرافه که خرافه باشد استوار بر همین تجربه مستقیم انسان از اصان با احسانس طبیعت هست و اصالت انسان را میپذیرد و همه روشنی ها و یا بینش ها را پیایند این تجربه مستقیم و انباد شدن با طبیعت میداند این انباد شدن را میگوید تنج که سنگ باشد یا مر میگوید ببینید این واجه سنگ برای ما یا مر مار شده است مر شده است مار کلمه به کلی مفهوم دورونه شده است هنج سنگ که معنای اتحاد و اتصال شده است شده است مفهوم قصاوت و سفتی و سختی حالا ببینید همه مفاهیم را چون ما روند پیدایشش را نمیدانیم برای ما خرافه شده است ولی درست همین جاهلیت و خرافه اصالت بنیاد اصالت ما بود است. این است که چناخت چگونگی پیدایش بینش ها از انسان و در انسان بسیار مهمتر از بحث در محتویات بینش ها و معلومات است. فرهنگ ایران گرانگاه خود را در همین پیدایش بینش از انسان میابد بینش است یعنی همیشه از تاریکی و جستجو و آزمایش زاده میشود روشنی و تاریکی همیشه با هم متسرم این جستجو و کشش به جستجو کردن رو نمیشود هست این تاریکی در انسان کشش کشش به جستجوست و یه روشن نیست. درست چیز مثبتی است اینی که نادانی را ما تخییر میکنیم و زشت میشماریم غلط است نادانی درک اینه که من نادان هستم درک این است که من در تاریکی هستم و کشش ب روشنی دارم پس ایجاد چی می شود حرکت می شود اینها مثبت هست ظلمت و تاریکی را زشت و تحقیر کردن این گرفتن حق جستجو و آزمایش از انسان است این است که شناخت چگونگی پیدایش بینش ها از انسان و در انسان بسیار مهمتر از بحث در محتویات بینش ها و معلومات است فرهنگ ایران گرانیگاه خود را در همین پیدایش بینش از انسان میاد و درست در اثر اینکه این اندیشه مخدوش و مخشوش و مبهم و نامفهوم و مسخ و تحریف شده است و چگونگی پیدایشان فراموش شده است از خورآوه و ژد و مان یا من ما اینها را همرا ناچیز میگیریم و خورافه میدانیم و دروغ جهل و افسانه میدانیم و سخنی کودکانه و ابرهانه و نسنجیده میدانیم که باید از ریشه کند و با آن به جهاد ر یعنی اون چیزی را که ما جاهلیت و خورافه میدانیم درست در اثر این است که ما چگونگی پیدایش بینش خود انسان رو نمیدانیم پس راه برخورد با خرافات، جهات و کین ورزی با خرافات نیست بلکه آگاه ساختن خود و آگاه ساختن مردم از چگونگی پیدایش بینش چگونه پیدایش آنها و چگونه تیره و تاریک سازی و مسازی و تحریف کردن آنهاست کشف این که چگونه یک بینش پیدا شده و سپس چگونه روند پیدایش خود را فراموش کرده و طبعا دشمن روند پیدایش بینش از خود شده است اساس تفکر پرسفش کشف این روند پیدایش پرسفه با این شروع می شود که ما چگونگی پیدایش بینش را از انسان کشف کنیم روند پیدایش روند تحول و گشتنش این است که در فرهنگ ایران خدای ایران ارتا ارتهای فرورد اون چیزی رو که امروز ما چی مرغ می نامیم و به عنوان مرغ و چلو کباب و چلو مرغ و امثال اینها تحقیر میکنیم این اردهای پرورد فرورتی ورتم به همون وردن آلمانیست یعنی شدن فرورتی که همون واجه فروهر باشد به معنای اصل متامورفوز و تحبول است. این را ها برمی دارن یک طرفش رو می نویسن افتار یک طرفش را می نویسن, نویسن، کردار اون بالاش را می نویسن اندیشه نیک به این ترتیب این, مف... این تصویر بسیار مهم را کاملا کثیف و ناباک و بیارزش میکنه. این فرابرتی اصل ممررفوت مت... و تحبل در هر انسانش این ارتا در هر چیزه. ارتها نخستین عنصر هر چیزی است، بنابراین هیچ چیزی فانی و نابود نمیشود و نمی بلکه همه چیزها تحول میابند و همیشه در روند پیدایش از حالت پیشین هستن فروهر فروردی این که در هر انسانی فروهری هست بیان آن بود بیان چیزهای مختلف بود اولا بیان این بود که اصل تحول از تخم به شاخ و برگ هست که همین بحثی را که در جستجو کشش از تاریکی بروشنی تقم معنیش یعنی تاریک همون دواجه تقم در خودش تاریک است چرا تاریک است؟ چون که در تقم بلقوه نه است و وقتی شاخ و برق پیدا کرد پدیدار میشه مسئله بینش هم، همین حرکت از تاریکی به بروشنیست خالا یک معنای فروهر اینست معنای دیگرش چیز اصل تحول یابی انسان مردم است دیگر به اصلش که ارتا که خدا باشد هست انسان همیشه امکان امکان تماس مستقیم با اصلش با خدا را دارد خب این بر تد... وجود تمام ادعای پیغمبری و پیغمبران و واسطه ها خب این همه برزه دینند پس بنابراین بهتر از همین رو خراب کنند یا اینی که مسخ کنند چنان که مثلا زردوشتی این فروهر رو مسخ کردند انسان بران چه مرگ می نامد به خدا به سیمور تحبال می آباد از این رو سیمرغ را جانان می گفتن همانسان که ارتا ارتا چی بود؟ ارتای خوشه یعنی خوشه پربین در اقتران با ماه به انسان و سایر جانداران تحول می‌یافت این تحول یابی را در آن روزگار آواتارا میگفتند که در اوستا افتار شده است در سانسکریت آواتاره اوتار که در بین تسبب شده است ابدال این آواتارا شده است افتری که نامی یکی از دهات یا شهرکات و این فتره و فترت عربی شده است ببینید اینا مانده است اصلا معنای یعنی گوهر خدایی که در انسان هست معنای خلق نداشته است که در قرآن می آید از این اقتران اقتران حلال ما با خوشه پروین که اسمش چی بوده است یکی از اسمش جدبار است جدوار زدوار یکی از ماش فات هست که همون پات باشد یعنی جفت از این اختران جدوار جد اون شیراب است که همه چیزها را با هم میپهندن وار ور یعنی زهدان یعنی شیرابه زهدان یعنی اون اصل پیدایه یک شیرابه یک اصانسی دارد اون رو بشتون گفتن جد این جد این اون چیزی که این جدی که پیدا می‌آواد اسمش چی بود درست به نکته اساسی در بخش مریسیم این را مینو می می‌گفتن که ماین یاوا باشد مین... که امروز مینو شده است از این از این اقتران خوشه پروین که ارتا خدای ایران باشد با حلال ماه که زهدان آسمان بود جدوار یعنی جد زهدان یعنی جد زهدان پیدایش میابه که اسمش مای نیا آواست مای یعنی مه نیا یعنی نی آوا یعنی آوه یعنی, یعنی, یعنی, یعنی, یعنی همون جد یعنی آب مای نیا یعنی نای مه اساساً نام ماه یکی لوخان بوده است که مولوی هم در شعرش آورده لوخان یعنی نای بزرگ چون که زهدان دنیا بوده است آبا یعنی آب، آبه و جد این استراحه مینون یکی از استراحات بسیار مهمی است که ساختار یا بافت فرهنگ ایران را معین میسازه بحث های ما اگر می‌خواهیم تفکر و فلسفه ایران رو بدانیم باید در این واژه فوق العاده دقیق بشیم چون که تفکر ایرانی از این واجه پیداش چرده است چه ما خوشم و بیاد چه نباید این هنوز در بستر زبان ما ریشه کرده است درست از همین واژه از که منیدن به وجود آم منیتن اندیشیدن چرا بهتی با دارد چرا بهتی به این جد به این آبی دارد به این شیرابه ایسانس, ایسانس همه دنیا که از این اقترام پیدا میشود. این خیلی مهم است یعنی ببین چه ارزشی به اندیشیدن داده می شود. این از ایسانس دنیا برمی خیزد. از ایسانس آفریننده دنیا برمی خیزد. از همین واجه است که واژه مانا پیدایش یک که معربش معنی شده است یعنی همه معنی ها همین جد هست. همین مینوخ هست. این جد یا آوه یا من یا مینوی ما را عرب ها بدان به القمار یا زبدالقمر میگفتن که البته جود یک حرف های گیج کننده شما در این آثار نمیابید و این من بارها بحث کردم و با بیشتر بحث خواهم کرد این به معنای معنای زندگی و جهان این مینو هست این متقیما شیرابه و اسانسی که این اصل هستی که به صورت نطفه در همه چیزها قرار میگیرد به این ترتیب گوهر منیگدن و اندیشیدن است. اندیش این تصویری بود که از این تصویر مفهوم واژه منیدن و واژه اندیشیدن پیدا شده است تبار اندیشه در اندیشیدن در فرهنگ ایران است اینکه همین واژه اصل منیدن است و از خود واژه‌ها و از خود واجه ها با شناخته شود در خیلی ساده است چون که در عربی‌ها میبینیم مثلا صفت معنیا یا مینیما مینیمن به معنای اندیشندگی است یعنی درست هم واجه مینو شده است واژه منیدن یعنی مینو که آب یا جد جاد نای ماه پر است یعنی زهدان زهدان آفرینندگی از سرچشمه همه آفرینش کههان از این این مینوی آمده است حالا ببینید چه تفکرات چه ارزشی به تفکر و به مغز انسان داده می شود. با این تصاویری که به نظر ما جاهلیت و سلوپوچ و هیچ است ولی اینها چه ارزشی به تفکر انسانی در رابطه اش با احسان و با جوهر دنیا اندیشیدن این مینو کجاست جایگاهش را مغز انسان می دانست. چرا؟ واژه مغز چیه هست واجه مزگاه یعنی جگاه ما یعنی جایگاه ما مغز انسان جایگاه ما هست در بندهش بخش سیزدهم هم به طور گسترده می آبیم که سر گرودمان است. که در استراحات زردوشی یعنی آسمان علی ولی درست هر همونجا میاد سر چون همچون گرودمان است. ولی همچونش رو که به کنار بگذاریم سر گرودمان است. مخ که ماخ باشد در از ماخ بود است یعنی ماه یعنی در گرودمان ماه است بهرهای از ماه حالا ببینید این چیره ماه پر در مخ ماخ همون ماه هست می دانیم که این گرودمان چی بود؟ خانه آباد یا آبادیان درست جایش در گرودمان است. این رو در گرشاسنامه نامه یافتیم که یاغوط یک پارچه میباشد و سروش این را می آورد. اینها خیلی مهم است. در همه اینها با رغمت یزدان شناسی زردشتی که اینها را حذف کرده است، همه باقی است اینها فرهنگ ایران است. در این یاقوت در این یاغوط یک بار چه؟ یا خانه آباد هست که ارتا پرورد و بهرام با هم هماقوشند و از نطوه یا آب یا جد آنها خورشید پیدایش میآود که در سپید دم سروش و رشن آن را میزایانند و مینو درست همین آب یا جد ماه هست پس منیدن یا اندیشیدن زایش خورشید از مغز یعنی ماه پر بوده است. مغز هر انسانی ماه پر یا ماخی در گرودمان یا خانه یا قوتی هستند. و جد یا آب این اقتران و عشق که نطوه خورشید هست در چشم انسان باز می شود و بیدار می شود و زایده می شود این همین این جد این مینو البته یه شناسی و زردشتی به واژه مینو معنای آسمانی و معنوی و بهشتی میدهد ببینید میاد آن را اعتراب بدهد انتظایی بکند از اصلش دور میکند به این است که بعدش ما امکان روند پیدایش بینش های رو نمیدانیم بعدش اینها میشود خرافه ولی مردم ولی مردم معنای اصلی مینو را به رغم چیرگی موبدان زردشتی نگاه داشتن از طرفی هنوز هم به نطفه منی گفته می شود که همون مینوست. و در روایات پارسی می دید که منی به مینو می رود. خب این مشخص است اصلا گنبد مینا یعنی جایگاه منی ها یعنی جایگاه اسانس چیزها معنی اصلیش البته ما خیلی این واژه ها رو زود به جن، روابط جنسی برمیگردن اونها این مفاهیم رو خیلی فراگیر میفهمدن جنسیت هم یکی از چیز بخش ها رویه های این ایده بود برعکسی که ما همه بعدش تمام این افکار رو به سکسوالیته به روابط جنسی تقلیل میدن در صورتی که اونها در این روابط کلیات میفهمیدن، نه یک بخش خاصی از وجود انسان از طرفی مردم حالا ببینید این مینو رو مردم به چی میگفتن؟ از یک طرف به زمورد زبرجد میگفتند از یک طرف به آبگینه سفید میگفتند چرا چرا اینها به وجود آمد واژه زمورد در پهلوی داشت. اوزوم، اوز ما یعنی عشق اش، و مهر برد که همان برتن بردن باشد به از اصلش برطار به معنای حامل و مادر و ذهدان است بنابراین زمورد به معنای آبستن به عشق و اساسا سب در پرهنگ ایران نخوص معنای عشق دارد این جنبش چه سبز ما که همه در معنایش گیران اساس تفکر ایران سبز را اصل اول عشق است بعدش چون که اشقه به زندگی است بعدش همیشه به فرشگرد به سرسبز شدن تازه به تازه معنا میدهد و به معنای قداست جان حالا ازا مورد به معنای آبستان به عشق است و اساسا سبز که گفتیم معنای عشق دارد حالا و زبرجد چیز ما با... که روابط دو رو دو با زبرجات اینها با هستند که به هم دیگر اه... ای... اه... چیز اتراق میشوند اینو از همدیگران زبرجات مرکب دو واژه زبر و جد است جد درست بحثی رو که ما می کنیم. جد جد این ج... اصلش زبرجات بوده است زبر در فارسی کنونی به معنای بالا و عالی و برتر است ولی این در اینجا این واجه در اصل پهلوی اصل قدیمی تر است چیز لغت فارسی کنونی دارد زور جد, جد یعنی زور به معنای نیرو و توانایی هست این امروز ما میگیم زوار زوار پرانی در آمد. یعنی بی نیرو شد اصلش زبر معنای نیروی توانایی داشت زبرجد به معنای نیروی اشقست نیروی به هم پیبنده است. درست همان معنای یومورد رو دارد حالا ببینید این تا اینجا پس زبرجد نیست به معنای نیروی محریست حالا گفتیم که این مینو مردم هنوز در زبانشون به آبگینه سپید هم میگوین. این با این یک مسئله فوق العاده مهمی تر می شود اینها فرهنگ ما هستند با روش, روش چگونگی پیدایش اینها را بدانیم کاربرد این واجه ها در یک فلسفه کسی که میخواهد به فلسفه بپردازد تا روش تحول واجه را نداند فلسفه‌اش بی اساس است آب گینه به معنای آب گین است آب کین کین و گین در اصل به معنای زهدانه آب گین می شود همون جد جد خوب نگاه یعنی چی؟ می شود اصل عشق درست این واجه تبدیل به کین شده است خود همین آب گینه حالا نگاه کنید چجور ما با خرافات اسمش را فلسفه میگذاریم با خرافات کار داریم حالا این کین که در اصل معناش اصل عشق است تبدیل شده است به معنای دشمنی و نفرت و انتقام کین ورزی و کین توزی یک دفه از اصل عشق شده است دشمنی و نفرت و انتقام خدایان نوری تازه که بر ضد این روند آفرینندگی و بر ضد اندیشه فرهنگ زن خدایی بودن درست به واژه کین که معنای زد و اصل عشق و مهر دوستی داشته است معنای زد داشت را دادم و ما امروزه این معنای وارونه را به کار میبریم اون مهر بوده است با تحریف و مسواجی کین و انتقام و دشمنی و نفرت شده است خوب نگاه کنید این با ندانستن چگونگی پیدایش چه مفاهیم در اثر تحول یافتن معانی واژهها چه مسائل ایجاد می شود. درست فلسفی ای که این تحول واجه ها را نداند و همطور مقابل یک زبان خارجی یک واژه را ایرانی را به معنای امروزهاش میگذارد بکلی به کلی ارزش تفکر فلسفی ندارد در کتاب روایات پهلوی از داختان دینیک ترجمه دکتر اپیپی درباره اهورامزدا زردشت میآید که خوب نگاه کنید در همون جزوش دیگری باقی مانده است او یعنی اهور نه خود آسمان را از سر بیافرید یعنی از سر خودش گوهر او حالا اینجا نگاه کنید یعنی گوهر او که البته سر یاد و باشد گوهر او از کین سپید بود بعدش چند جمله بعدش میاد گوهر آسمان کین سپید روشن و روشنی او از آن خورشید است خوب نگاه کنید این واژه کین چنان که اپ اپیپی به دقت دریافته همان واژه آبگین است یعنی واژه کین جای آبگینه. آب گین یعنی جت درست همین زبرجت و این زمرد و تمام این بحث رو که می همون مینو ابگینه همون معنای مینو رو دارد برای این خاطرم می این چیشه های البان و این‌ها را همه را مینو با اینها می مثلا باربود لحن و یا دستانی را که برای روز نوزه ساخته روز نوزدهم چی چیست روز ارتاب پر پر است. به این روز موسیقی این روز رو کینه ایرج گذاشته دوستان البته معنای اصلیش جد و مهر و عشق ایرج است در شاهنامه میبینیم ایرج اصل مهر است ولی ما به معنای انتقام خواهی از ایرج میفهمیم با چنین تحریفاتی فرهنگ ایران واجگونه ساخته شده است مثلا نام روز دوازه ماه هر ماه روز 12 روز ماه هست این را مردم میگن تینه کش این به معنای نیست که ماه انتقام گیرنده و سرچشمه نفرت است. بلکه درست به معنای حامله به مهر است. کینه را میکشد یعنی عشق را میکشد چنانچه نام دیگر ماه کلیچه سیم است که به معنای کلید مهر و کلید عشق حالا برگردیم به این که سر حالا بحث سر را کردیم که اینجا درست آمد که این سر گوهره و از کین سپیده خیلی خوب حالا برگردیم این که سر گرودمان در بندهش بقش سر گرودمان یا خانه آباد یا یاغوت یک پارچه بود و نطبه ای که در آن پدید می آمد چی بود؟ مینو یعنی زبرجد و زمرد یا آبگینه سفید بود که این آ... و حالا گرودمان گفتیم که این همانی داده می شود با یاغود خان یاغوت یک پارچه وقتی از این یاغوت یک پارچه چی, چی مینو مینو پیدایش می آفد یعنی چی؟ زمرد و زبرجد و آبگینه سفید خب نگاه کنید تمامی اینها خیلی مهم است چون که اینها بخش زیبایی پیدا میکنند این سنگ ها رابطه این مهرها فوق العاده در تفکرات ایران در زیبا ساختن دنیا اهمیت داشته این زبرجد و زمرود چون که در معناش دیدیم میتواند جا جا جانشین آبگلی سپید بشود چون که دیدیم که آبگینه همون معنای و درد. زمرد و زورجدرو دارد حالا سروش که زایاننده این مینو این نطفه خورشید در سپیدادم است چرا این نطفه خورشید در سپیددم کودکی شده است که خورشید باشد و میزاید از سروش و لایده می میشد حالا سروش آورنده این یاغود یا خانه آباد یعنی سرششوه آبادیست این خیلی مهم است چون که سروش هر انسانی سروش خودش رو داشته است یعنی هر انسانی استقلال فکری داشته است که اصل آورنده و زایاننده خرد و اندیشه از مغز یا ماه پر است مغز گفتیم چی است؟ مزگه یعنی ماه جایگاه ماه این اندیشه زایش خورشید از یاغود یعنی خانه آباد در شاهنامه چنین بازتاب شده است فردوسی نمیخواست است. اصل مطلب رو که آبادیان هست و اینها بیاورد ولی اصل مطلب وقتی که ما حالا با این واژه ها آ... چیز شدیم آشنا شدیم خوب میفهمیم زیاغوت سرخ است، چرخ کبود نه از بادو، و آب و نه از گرد و دود به چندین چراغ به چندین فروغ و به چندان چراغ بیا راسته چون به نوروز باخ روان اندرو گوهر پروز یعنی خورشید روان اندرو گوهر دلپروز کزو روشنایی گرفته از روز که هر بامدادی چو ذرین سپر ز مشرق برارت پروزنده سر زرین کلمه زرین را باستی خیلی مواظب بود برای خاطر که در فارسی زر زرین به معنای سبز هم هست اساساً زردی که سبز می شود معنا هست از این رو هست که هر دو معنا را دارد ولی اساسش معنای سبز است چون که مثلا زرمایه اون آبی که باز مثل جد از اصل پیداش پیدا می شود معناه اصلیش یعنی سبس حالا با این گوهر دل که از یاغوت دیدیم پیدا می شود چی می شود زمین پوشد از یعنی خورشید زمین پوشد از نور پیراهن و شود تیرگیتی بدون روشن این جامعه روشنی را به دنیا پوشاندن این بعدش خواهیم دید که سروش بر گرش آتنامه نامه نام آورنده جامعه روشنیست. این خیلی است روشنی جامعه است بهمن جامعه،, جامعه می پوشد جامعه سپید یعنی روشن است همین اندیشه حالا ببینید این همین اندیشه در جهان آری جهان آرائی کیکاووس با تابیده می شود کاووس ببینید ما کتاب های و اینها را تفکرات ایران را گم کردیم اما مغز و اساسش هست فقط نیاز به تفخیص و کار و بازیابی دارد کابوس پس از آزمایش های گوناگون در زندگیش که می کند در پایان به جهان آرایی می‌پردازد. جان جهان که معناش سیاست هست با چی اهمانه داده می با ساختن خانه چه خانهی؟ ای؟ این بحث هستی ساختن خانه در پرهنگ ایران جمشید با ساختن خانه شروع میکند یعنی ایجاد مدنیت ایرانی تفکرش اساس تفکرش بر ایجاد مدنیت آباد کردن ایجاد مدنیت بوده است ایجاد پرهنگ بوده است این است که ساختن خانه ببینید یکی با جهاد شروع می کند یکی پرهنگ ایرانی با ساختن خانه شروع میکنه آباد میکنه جهان رو معمار جهان است. ساختن این بهمن معمار جهان بود خدای معمار بود ساختن خانه که در واقع هفت قلعه در درون اون اینها این که در همین تف... سمبولیک ها در تمام تفکر هست من در اینجا فقط اول به طور کلی بحث میکنم بعدش در جزئیات هم بحث خواهم کرد در این هفتخانه خانه در درون همدیگر اندیشه آراستن جهان یعنی سیاست در فرهنگ ایران بیان کرده میشود که نیاز به بررسی گسترده دارد ولی خانه میانین و آخرینش کاخ ذری نیست که با یاغوت و پیروزه ساخته شده است. درست؟ من این پیوند را که الآن داریم بحث میکنیم میخواهم بگویم زرد و ثبز در فرهنگ ایران یک معنا داشتم درست این خانه پیکریاوی اندیشه مینو هست با منیدن از مغز که جایگاه ماه پر است به حساب ببینید ان... تفکر باقی مونده است منیدن در من مغز انسان توانای ساختن بهشت در گیتی را دارد این اجعال ایرانی بود با تفکر با تفکر انسانی می توان گیتی را بهش در گیتی را کرد حالا این درباره این خانه هفتم در شاهنامه می آید یکی کاخ زرین که این خانه هفتم باشد یکی کاخ زرین ز براورده باراش رو بر دو شست ز پیروزه کرده بر نگار بر ایوانش یاغود کرده بکار چنین جایگاهی که دل خواست راست این جایگاهی که دل انسان اون را میخواهد که روزی بیفزود و هرگز نکاست نبود تموزیچ یعنی هیچ زمستان نبود نبود تموزیچ پیداز بیر هوا انبرین بود و باران شمی همه ساله روشن بهاران بودی همه ساله روشن بهاران بودی گلان چون رخ غمگساران بودی یعنی گلهای زرد آخر گل زرد گل رامست ز درد و غم و رنج دل دور بود زردرد و قم و رنج دل دور بود بدی را تن دیو رنج، رنجور بود یعنی بدی فقط دیو رنجور داشت حالا در این خانه هفتم که اوج خانه هاست که از زر و پیروزه و یاغوت است همیشه بهار رو همیشه بی و رنج و غم هست این مفاهیم که همه به مینو یا جد یا آب یا خرآوه خانه آباد که در او اقتران باد میگرده این چیز که این مینو از کجاست از اقتران ماه و پروین است برمیگردد و هم اصل آفریننده خورشید و هم اصل آفریننده اندیشه است ببینید این مفاهیم همه به مینو برمیگردد که از چیز که از خانه آباد از اون است آره این و این خانه رو کی می آورد سروش سروش می آورد یعنی خاره، یعنی اصل آبادی رو که زایاننده خرد بهمنی یا آسان خرد می آورد و این همانی با گوش سرود خرد گوش سرود خرد دارد سروش این همانی با گوش سرود خرد یعنی با پیش آگاه انسان پیش آگاه انسان این بینش را الرا میدهد سروش می تا پیش آگاه انسان رشن اون رو آقا به آگاهی میرسونه این ببینید این تمام این مراحل در بعدش پچ پی دادم اوش بام هست و اوش بام بام اوش اینها دو مرحله فوقالعاده گذر از یک لحظه تولد خورشید و همین در, در تفکر انسان هم همین هست حالا درست میبینیم که جم نیز از همین سه انصر ساخته شده است. و این جامجم کجا کجاست؟ این خیلی مهم است. این جامجم زیر بالین رستم است که به دشمن کینتوزش بهمن پای رنج میدهد ببینی چه جوان مردی بهمن که فرزند اسفندیار و نبیه گشتات بست اینها مربجین و مبلغین آین زردشتی بودند اون وقت این بهمن کینتوزی با آین سیمرغی و با خانواده زار رو به اوج ناجوان مردانی میرسن اصلا دیگر حد نمیشناسد تمام آین و رسوم انسان مردمی رو زیر پا میکتارد برای تعصب دینیش وقتی رستم وقتی که او به بالینش می آیا نامید هست که میگوید من میدانم که تو می از من کی توزی کنی ولی چی میگوید جام جمع را من به تو هدیه می دهم. این مردی که در تعصب دینیش پشت پا به همه موازین اخلاقی می زند چنین انسانی با نگاه در این جام که از یاقوت و آبگینه و زر ساخته شده است مغرب میشود و دست از کینه توزی و انتقام گیری میکشد و تعصب رو رها میکند منیدن او در یک ناگاه در جام جم تحول مییابد رستم به اون, بر اون نوشته در اون لوح نوشته است مرا زیر بالین یکی گوهر است تو بردار کان را در خورست زه چیزی که داننده آمیخته است ز بالای این خانه آویخته است فرو دار و سوی خزانه فرست چو بهمن به بالین او کرده است برون کرد از و جام گیتی نمای که بهمن به بالین او کرده است برون کرد از او جام گیتی نماد کجا داشت کی پاک راوی به بخشش بخشست فرخنده پی نمودی همه هفت کشور بکی یاقوت سرخ اون گران جام یکی شیشه یعنی آبگینه از ذر گرفته تمام درست میبینیم همان حالا این بهمن در اینجا در دی در یافت و نگاه در اینجا میجم جهانجو چودان خاص گهش شاد تو گفتی روان و دلش پرخوشاد باید در نظر داشت که چشم بنابر بندهش از آبین است یعنی از جد از مینو از مان من به عبارت دیگر خوب حالا من خواستم رابطه این جام جمع را با چشم انسان نشان بدم که در پرنگ ایران بوده چشم در بندهش از آبگینه است آبگینه یعنی همون جد یعنی همون مینو به عبارتی دیگر مردمک چشم که یکی از بیبق بی بیبق است بیبق یعنی دوتا خدا با هم یعنی ارتا و مردم که چشم یاغوت است که از اون چی؟ جد یا آبگونی سپید یا زمون و زبر جد یعنی عشق و مهر و دوستی میتابه ببینید چه تفکرات عالی رو در این کاربرد این چیزهای زیبا بیان کردم اون چه این محتویات را به هم پیبندد این همانی واژه منیدن با مینو هست من از این گفتار خلاصه را این همانی واژه منیدن با مینو هست و این گرانیگاه فرهنگ اجتماعی و اخلاقی و سیاسی ایران است منیدن اندیشیدن آن اندیسیدن دیسیدن یعنی شکل و چهره و صورت دادن این شکل دادن همیشه معنای زیبایی داشته است. منیدن یا اندیشیدن نقش نقشردن اصل زیبایی در گیچیست چون نخستین تجربه انسان در فرهنگ ایران تجربه زیبایی در خداست در اصل آفریننده جهان خود این چیزی را که فرهنگ ایران تجربه می کند گناه نه نقص این است که با این تجربه اصل زیبایی انسان گیتی رو، اجتماع را زیبا می کند سیاست را زیبا می کند و در این زیبا کردن گیتی خودش زیبا میشه تو دنیا را زیبا کن در این زیبا کردن خودت زیبا میشه با منیدن همه چیزها را تبدیل به یاغود و زبرجد و زمرد و آبگینه میکنن همه چیزها را شپاپ و درون و همه چیزها را سبز و ترازه و تازه و دوست داشتنی میساز همه چیزها را مینایی میکنن رنگ و قشنگ و جذاب میکند. جهان را در منیدن مینا می رنگا رنگ می کند سالها دل طلب جام جم از ما می کرد اون خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش کو به تعیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قده باده بده است آن آینه صدگونه تماشا میکرد گفتم این جام بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی از دور خدا را می کرد همانطور که میناگری با ماده از جنس شیشه و چینه رنگ برپلی ذات و جز آن نقش و نگار می و کیمیاگر و صاحب اکسیر است انسان نیز در منیدن همه چیز رو مینو و مینا می کند